بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین التاهرین المعسومین لا ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام و منك السلام و لکه السلام و علی یعود السلام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 السلام و علی جعفر ابن محمد, محمد بن علي الجباد. السلام و علی موسی بن جعفر الکاظم السلام و علی بن موسر موسی الرضا السلام و علی محمد ابن علی بن السلام و علی بن محمد الهادی السلام و علی الحسن ابن علی بن زکی السلام و علی الحجت ابن الحسن القائم ادامه بحث گونه که مستهزرید بینشهایی در طول تاریخ پیدا شد و عمل کردیم که بر اساس آن بینش به وجود آمد چه در صدر اسلام و چه تا زمان ما با عنوان یکی از موانع بزرگ مسیر تحقق هدف انبیا میشه نام برده بشه ارز کردم که از جمله این موانع فهم و درک و معرفت نسبت به کارایی وحی و توان وحی در اداره امور انسان هاست. تعبیر روشن و سریحی که در این دوره های اخیر نسبت به این موضوع کار بردن گرچه اصل این بحث از قدیم الایام مطرح بوده و ما نمونه رو هم از صدر اسلام نشون دادیم با مدارک و منابع ولی اون چه که در زمان ما بیشتر الان این قضیه مطرح شده تحت عنوان اقلی یا اکثری بودن دین تحت این عنوان که آیا دین میتواند همه نیازمندی‌های انسان را تأمین کند؟ و بشر برای رسیدن به سعادت و داشتن یک زندگی ایدئال چه در شعون فردی و چه در شؤون اجتماعی باید توقع از وحی داشته باشد یا خیر دین حد اقل را برای انسان پیش بینی کرده و بقیه مربوط به ما انسان هاست که بیاییم عوامل مختلفی که من جمله خرد جمعی نگونه ای به کار ببریم که کمبودهای وحی و نارسایی های دین را جبران کنیم گفتیم که در الهیات مسیحیت این مطلب جا داشته که مطرح بشه با شواهدی که جلسه قبل هم ارائه کردم چون وقتی کتاب خدا تحریف شد و به نام باورهای دینی یه مطالبی مطرح شد که با عقل سریح و با علم روشن منافات داشت قطعاً نمیتوان آنها را به عنوان امور دینی پذیرفت مگر این که اینگونه بگوییم همینی که در الهیات مسیحیت مطرح شد چگونه؟ گفتن یا باید به کلی دین را کنار بگذاریم و چون باور مذهبی داریم و نمیتوانیم وحی را رد کنیم پس میایم میگیم عقل و وحی با هم جمع نمی شود علم و دین با هم سازگاری ندارند. دین را جدا علم و عقلم یک مسئله ای باشه اگر گالیل از نظر علمی به یقین میرسد که زمین دارد به گرد خورشید میگردد ولی به عنوان یک باور دینی در کلیسا مطرح کنند که اگر کسی قائل شد زمین میگردد این خلاف دین است خب اون عالمی که این مسئله رو از نظر علمی به یقین پیدا کرده چه بگوید؟ یا باید بگه کلیسا و مسائل دینی و اون چه که به عنوان وحی گفته شده غلط است؟ یا باید بگوید پس این امور علمی با وحی امکان جمع شدن ندارد؟ ولی آیا ما در دنیای قرآن؟ در عالم اسلام ویژه در مکتب تشییو و مکتب اهل البیت علیه السلام. می میتوانیم این حرف را بپذیریم قطعا خیر هم عقل اثبات میکند که فقط یادآوری میکنم دیگه وارد بحثش نمیشم چون قرار بحث دیگه جمع کنیم هم عقل استشهاد عقلی میکند که اگر وحی فعلی از افعال خداست خدای عالم مرسل است منزل است هادی است اگر شما خدا رو میگید یا خالق ولی خلقت نداشته باشد خب خالق بودنش که معنا پیدا نمیکنه. اگر به خدا میگید هادی اگر فعل هدایتی در این عالم نداشته باشه پس خدا هادی نیست و اگر خدا را مطلق کمال می عالم است و حکیم عالم و حکیم یا مطلق کمال فعلش هم باید برخوردار از حکمت باشد لازمه فعل یا مرسل یعنی ارسال رسول یا منزل یعنی انزال کتب یا هادی یعنی عوامل هدایت برای انسان قرار دادن از نظر عقلی این است که چون او مطلق کمال است این فعلم از کمال و حکمت برخوردار باشد اینو عقل حکم کرد و نمونه هایی که ما قبلا روش بحث کردیم دیگه اجازه بدید تکرار نکنم دوم وقتی به درون دین آمدیم یک در قرآن کریم کتاب الهی دیدیم قرآن کریم تصریح دارد که اگر این کتاب از طرف خدا برای پیغمبر نازل شده است تبیانن لکل شی بیان کننده هر چیزی است خب اینجا از نظر قرآن اگر بخوایم نگاه کنیم آیات فراوانی داریم که مدعی است من اون چرا که برای هدایت شما بشر لازم است بیان کردم روایاتی که از معصومین علیه السلام به ما رسیده و اونها اولین مفسرین به حق قرآن و اولین توضیح های به حق کلمات الهیهن خطبه هیجده نحجل بلاغه رو جلسه قبل با هم بحث کردیم که امیر تصریح فرمودن مگه دین خدا نقص داره که شما میخواید به کمک وحی برید و بخواید تکمیلش کنید مگر پیغمبر خدا در ابلاغ اونچه که خدا بر او نازل کرده کوتاهی کرده که شما میخواید کمبوداشو جبران کنید بعد روایات دیگری که از سایر معصومین خوندیم تا به اون نکتهی که پیغمبر خدا در خطبه قدیر خم سریع فرمودند، من آنچه چه لازمه سعادت شما بوده به شما گفتم. اونچه شما رو به شقابت میرسونه براتون بیان کردم امام صادق فرمودن ما از طرف پروردگار لوحی داریم مصحفی داریم که اینا طوسی میخواد البته شاید عرض کنم امشب لوحی داریم مصحفی داریم که حتی حکم اگر کسی با یک انگشت به پشت دست کسی زد یک خراش کوچکی ایجاد شد حکمش چیست حکم اینم بیان شده. یعنی ما چیزی رو فروگذار نکردیم. پس عقل میگه نباد ناقص باشه. قرآن میگه تبیان کل شیعه. روایات معصومی نه یکی نه دوتا نه ده تا نه ست تا تصریح میکنه که دین کامل لازمش این است که همه نیازمندی های شما را بینی کرده باشه. خب آخر جلسه گذشته رسیدم به ایرادی از غائلین به اقلی بودن دین، نسبت به این بیان تبیانا لکلشه که عرض کردم چون زمان محدوده میگذارم جلسه بعد که امشب باشه با هم بحث کنیم اجازه بدید من اول اون اشکال و ایراد رو عرضه بکنم بعد دو دیدگاه در جواب این اشکال مترهه که دیدگاه اول رو ما برای عموم بیان میکنیم کنیم ساده تر و روشنه ولی دیدگاه دوم از یک ارزش بسیار بالایی برخورداره و باید بشر رشدی بکنه به اون دیدگاه نزدیک بشه تا حقیقت وحی را بفهمه و بتونه بهره مند بشه که هنوز ما در جوامع اسلامی نسبت به درک دیدگاه دوم مشکل داریم تو خیلی مقدمات لازم داره ولی ارز میکنم از مرحوم علامه تبا تبایی رزوان الله تعالی علی نقل است که ایشون برخی از درسهایشون را در حوزه علمیه قم پنجاه سال قبل شست سال قبل می نمیتوانم برای عموم بیان کنم حتی طلبهای حوزه ما فعلا نسبت به این مباحث شاگرد ابتدایی هن. این بحث دوم به اون حرف ها رفت پیدا میکنه. کنه کالا رو اشاره خواهم کرد خب ایراد چی بود؟ جواب دیدگاه اول چیه؟ جواب دیدگاه دوم که هنوز اکثریت مسلمون ها شاگرد ابتدائی نسبت به اون دیدگاه دوم چیه؟ ایراد گفتن اگر تبیانن لکل شیع معناش این است که قرآن یک کتاب کاملی است که همه چیز را پیش بینی کرده، شما امروزه مثلا راجب جراحی کلیه کجای قرآن دارید؟ راجب فیزیک کجای قرآن دارید؟ راجب شیمی چه آیاتی در قرآنه؟ راجب مسائل گوناگون مثلا علوم رایج تجربی و غیره کجای قرآن آیه دارید پس منظور از تبیان کلشی یعنی کلشی رو محدود می به چی؟ به اموری که مربوط به اخلاق و یه سری روابط شخصی و اینهاست نه همه امور جواب جواب اول اولاً اینکه شما میفرمایید تبیان کلشه محدودش فقط مسائل فردی است از کجا آوردید از کجای آیه فهمیده می میشه ما یا باید غرینه لفظی داشته باشیم یک لفظ را یک عبارت را یک جمله را بیایم محدود کنیم یا دامنش رو گسترده کنیم یا باید غرینه عقلی داشته باشیم یا غرینه مقامی داشته باشیم یا غرینه مکانی اینا در ادبیات مطرح شده من الان یه مثال میزنم با مثال روشن میشه تقاضا دارم دقت کنید اگر شما وارد دانشکده فیزیک شدید یه استاد فیزیکی آمد گفت من این کتاب فیزیک را نوشتم میدم به شما دانشگاهیانی که میخواهید راجب فیزیک تحقیق کنید این هرچه لازم دارد بیان شده در او غرینه عقلی در اینکه استاد استاد فیزیک است، دانشکده دانشکده فیزیک است میگه هرچی لازم دارد در او بیان شده است یعنی هرچی در رابطه با؟ فیزیک دیگه. این غرینه عاقلی داره یا نداره. حالا اگر یک نفر بیاد یه استادی تو دانشکده فیزیک بگه من کتاب شما رو باز کردم راجب پزشکی توش نیست. میگه من گفتم؟ اینجا دانشکده فیزیکه من در رابطه با فیزیک این کتاب رو نوشتم حالا اگر انسان چه قدرتی داشته باشه مثال میزنم انسان چه قدرتی نداره حتی یه استاد فیزیک بگه همه اساطیقی فیزیک با هم دیگه جمع بشن بگن هرچی در رابطه با فیزیکه من این تو نوشتم حالا فرض کنید ما چه قدرتی داشتیم میگه هرچه هست تو این اومده خب هرچی هست غرینه غرین غرینه عقلی راجع به فیزیکه حالا اگر دانشکده پزشکی بود استاد پزشکی آمد سر کلاس کتابی رو داد به شاگردا گفت اونچه لازم است من در این آورده‌ام خب غرینه عقلی میگه اونچه لازم است در رابطه با پزشکی دیگه دیگه ما فیزیکه که توقع نداریم تو این کتاب باشه اون دیدگاه اولی که ما راجب به قرآن داریم این است قرآن مدعی چه امریست؟ هدایت خودن للمتقین بسم الله الرحمن الرحیم الف لا میم زال کل کتاب لا ری بفی خودن للمتقین این نحاز القرآن یهدی للتی هي اقبم قرآن نمیگه من آمدم به شما فیزیک یاد بدم این رسالت من نیست من نیومدم به شما شیمی یاد بدم این کاریش که خودتون برید انجام بدید من نیومدم مسائل پزشکی رو برای شما بیان کنم من آمدم راه آدم شدن آدم ها را بیان کنم قرآن نه کتاب فیزیک، نه کتاب شیمیه نه کتاب پزشکی. نه کتاب تاریخ، نه کتاب جغرافیه، کتاب هدایت هاست به آدم شدن و رسالت انبیا چیست یا و یعلمهم الكتاب و معمول کتاب حکمه در بر مبنای هدایت الهی. پس اگر فرمودن ما فررتنا، ما هیچی رو در این کتاب فرو نکردیم که جلسات قبل آیش رو خوندیم، اگر فرمود تبیانا لکلشی، لکلشی ای که در رابطه با رسالت قرآنه، رسالت قرآن هدایت پس هرچی در رابطه با هدایت انسان لازمه قرآن با داشته باشه. بله اینو ما ادعا میکنیم داره. تازه از این بالاتر دیدگاه دوم عرض میکنم ولی اول همین دیدگاه اول آقا قرینه عقلی این را میرساند و قرینه نقلی هم در توضیحش این رو بیان میکنه که قران رسالتش آدم سازی است انسان را انسان بسازه ما مثلا توی دانشگاه های فنی مهندسی تو دانشگاه های فنی مهندسی تو دانشگاه های علوم پزشکی تو دانشگاه های علوم پایه و مسائل تجربی گاهی این بحث می‌کنیم میکنیم توی کنفرانس ها،, ها حتی گاهی تو کلاس ها میگیم اگر مثلا ما میگیم توی دانشگاه صنعتی باید اخلاق هم تدریس شود تو دانشگاه علوم پزشکی باید اقاعد هم تدریز شود نه رسالت دانشجوی پزشکی و دانشجوی فنی مهندسی مسائل اخلاقی است اما است که قرار مهندس بشه است که قرار پزشک بشه اگر یک انسان در زمینه پزشکی به بالاترین حد تعالی رسید ولی از نظر انسانیت آدم نبود خطرش برای بشریت بیشتره یا نه؟ اگر یک پزشک یا یک مهندس یا یک صاحب نظر علوم تجربی در رشته تخصصی خودش صاحب نظر تو دنیا معرفی شد ولی از نظر اخلاق و انسانیت و آدمیت اونی که قرار باشه نبود اینا بدبختی برای بشر میارن ما الان مخصوصا در قرن بیستم و این شروع قرن بیستی یکم این ده پونزه سال مشکلی که بشریت در در کره زمین داره کمبود علوم تجربی مسائل فنی مهندسی و مسائل پزشکی است یا کمبود تعالی انسانیت انسانه قرآن اومده میگه اونا رو شما خودتون برید کار کنید ولی من آمدم راه آدم شدن را به شما یاد بدم که چگونه قرار آدم بشید و اون راه را باید خدا بیان کند چقدر آیات فراوانی در قرآن اومده؟ اِنِ الُحُکْمُ الا لله نیست حکم مگر از طرف خدا. برای چی؟ برای آدم شدن، برای هدایت. و لذا وقتی در رابطه با تعالی انسانی مطرح میشه ما می بینیم بشر قرن که در زمینه صنعت و تکنولوژی پزشکی تا به اونجا پیشرفت میکند که این کلیه رو برمیداره داره کلیه دیگه جاش میذاره این قلبو در میاره قلب دیگه جاش میذاره تو صنعت کارو به جای میرسونه میره تو کرات دیگر هم فرود میاد به اعماق اقیانوسام نفوذ میکنه ولی در همین قرن بیستم، بشر از نظر بشریت بیش از قرون گذشته مشکلات انسانی داره یا نه حد دو تا جنگ جهانی اول و دوم استثمار چه میکنه؟ استهمار چه میکنه؟ ظلمها چه میکنه؟ این ده پونزه سال اخیر کره زمین رو بگیرید چقدر بیانصافی، بیادالتی، خونریزی ها، تبعیز ها به نام حقوق بشر آشکارا ارزش های انسانی رو زیر پا میگذارن پس معلوم بشر تو زمینه انسان شدن بیچاره است خدا پیغمبر فرستاده کتاب فرستاده راه انسان شدن انسان ها رو به ما نشون بده و وقتی ما دنبال مکتب وحی برای نحوه آدم شدن نمیریم ولو کره ماه را بگیریم ولو به اعماق اقیانوس ها نفوز کنیم ولو این قلب رو برداریم قلب دیگه جاش بگذاریم همه این قدرت ها رو پیدا کنیم ولی هنوز نتونستیم یه خانواده موفق داشته باشیم هنوز نتونستیم یه جامعه سعادتمند رو تو کره زمین به دنیا نشون بدیم. ظلم نباشه، بی‌عدالتی نباشه، انصاف حاکم باشه، استثمار نباشه، دزدی نباشه، رشوه نباشه و هزاران گرفتاری های دیگر. اینا مشکل بشره. قرآن برای اینا اومده و لذا میگه ان هازل قران یهدی للتی هی اقوام و این هدایتی که اقوامش از قرآانه قرآن میگه تبیان لکل شیعه نه اونی که رسالت منه چیزی رو فروگذار نکردم و لذا حالا این بحث انشالله به اندازهی که هفته بعدم وقت به درج میکنم به همین دلیل با اینکه که قرآن تبیان کل شیعه خدای عالم پذیرفته یعنی پذیرفته به این معنی حکمت خدا این اجازه رو داده. این تقاضا دارم دقت کنید. چرا خدای عالم قبل از پیغمبر اسلام و قبل از قرآن ارسال رسول و انزال کتب رو قطع نکرد ادامه داد؟ بیکار بود؟ دل بخوایی کار کرده خدا؟ میگه حالا یه پیغمبر دیگه هم بفرستم. اینجا بیکار نشستم کاری دیگه ندارم دلم خوشه بزن یه پیغمبر دیگه بفرستم بزن یه کتابی دیگه بفرستم ولی وقتی قرآن اومد و پیغمبر اسلام اومد فرمود و تممت کلمت ربک صدقا و رب بکست عدلا لا مبدل کلماته یعنی خداوند اینجا دیگه خسته شد بابا حکیمه آخه ما وحی رو قبول کردیم ما جز دسته اول نیستیم که خدا را قبول نداشته باشیم وحی را قبول نداشته باشیم اگه جز دسته اولیم یه جوری دیگه باید بحث کنیم اما اگه جز دسته دومیم خدا حکیمه حکیم چرا تا زمان پیغمبر اسلام هی hey, پیغمبر فرستاد hey, پیغمبر فرستاد. بعد پیغمبر فرمود دیگه تمام شد چرا؟ یعنی اون کار هدایتی پروردگار که به وسیله نبی نبع بیاورد خبر به وسیله کتاب دستورالعمل و بقیه نشون بده کامل در دسترس مردم قرار بگیره انجام نشد تحریف کردن دست بردن پوش مشکلات دیگه ایجاد کردن تا رسید به اسلامی که به برکت پیغمبر اسلام به برکت ائمه حدا در کنار پیغمبر اسلام به برکت برخی از صحابه راستین چون سلمانها ابوزرها مقدادها امثال اینها خدا زمینه را برای رسندن پیام الهی به صورت کامل که اینها نگه دارن به همه بشر برسانند فراهم شد میگه پس کار نبوتی دیگه تمام شد دیگه نیازی نیست حکیمه؟ میگه من قرار تجلی هدایت من تو این عالم به مردم برسه تا قبل از پیغمبر اسلام کتاب تحریف شده پس تجلیه هدایت من تمام نشد تا قبل از قرآن کتابها ها جامعه همه اونچه که به عنوان حادیه الله برای مردمه وجود نداره لذا میگه هدایت من هنوز به اکمال نرسیده وقتی به این کتاب رسید هم فرمود راجب پیغمبر اسلام خاتم النبیین هم فرمود و تمت کلمت و ربکه و عدلا لا مبدل کلماته تمت یعنی خدا دیگه حرف نداره بفرسه مگه خدا علمش دهمی کشه این چجور توهیدیه یعنی اونی که برای هدایت شما از طرف خدا لازمه تمام شد یک چیز دیگه شما اونو به شما گفته خب این نگاه اوله اما نگاه دوم تقاضا دارم خیلی با خودم کلنجار رفتم وارد این نگاه دوم بشم یا نشم بعد دیدم بی‌انصافی است که نشم ولی بنده ادعا میکنم با یه جلسه دو جلسه پنج جلسه برای همه جا نمیوفته قبول دارم ولی ما مستمعینی داریم که میدونم برای اونها اشارم کفایت میکنه پس نگاه اول چی شد اگر قرآن کریم میفرماید در سوره مبارکه که نهل آیه شماره 89 و نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل فوری بعدش قرینه میاره و خودن و رحمتن و بشرا للمسلمین نگاه اول چی بود؟ تبیان لکل شیء در رابطه با هدایت اونچه شما برای هدایت لازم دارید قرآن تبیان کل شیء همه رو براتون بیان کرده اما اینجا این نکته رو می‌خواستم اضافه بکنم بعد بیان سراغ جای دوم خدا تا زمانی که کتاب تبیان کل شیء نشه کتاب فرستاد تا رسید به این کتاب که امکان تبیان کل شیء بود اما سیزده معصوم یازده امام غیر از یارانشون خدا حاضر شد پذیرفت این پذیرفت یعنی حکمت خدا ایجاب کرد شهید بشن زندان برن تبعید بشن همه مشکلات رو تحمل کنن نزدیک سی سال از لحظه ای که قرآن نازل شد در مکه ابتدای 23 سال رسالت پیغمبر تا غیبت امام زمان علیه السلام سال 260 هجری 260 اونجا 10 13 سال قبل از هجرت میشه تقریبا 273 نزدیک 300 سال نزدیک 300 سال خدا 13 معصوم را پیغمبر حضرت زهرا یازده امام تبعید بشید بشه زندان لازمه برید برید هر جور وسله به شما چسبوندن به چسبونن شهید میشید بشید ولو مثل کربلا را میافته سر شما بالای نیزه بره بره ان شاهن یراک قطع. که چی بشه؟ برای چی؟ مگه خدا حکیم نیست؟ مگه خدا نمیتونست مثل امام عصد علیه السلام که فرمود حالا قائب میکنم پس پرده بمون؟ در معرض مردم نباش. خب از بعد از پیغمبر امیرالمومنین میفرمود پس پرده قرار بگیر. این غورتکیه نه. خدا میگه باید هدایت من برای مردم به گونه‌ای تبیین شود که اتمام حجت صورت بگیره. از طرف من خدا تجلی هدایتی هم نقص نداشته باشه. لذا پیامبر اگه لازمه هجرت کنی هجرت بکن اگه لازمه فوش بخوری بخور اگه لازم خاک روبه تو سرت بریزن خم به ابرو یاور لذا عباس عموی پیغمبره میگه وقتی یه صبح خدمت پیغمبر خدا رسیدم دیدم محاسن حضرت عجیب سفید شده گفتم که برادر زاده عزیزم تغییر تو چهره شما پیدا شد فرمود این آیه نازل شد خشتمن و لرزون فستقم؟ کما عمرت استقامت کنی آوازی یا واسیا یا تو پرانتز بگم عزیزانی که تو کار فرهنگی دینی میخواید کار کنید به همین نسبت ماها هم مخاطب این آیه ایم خیلی امتحان سنگینه فوش میشنویم تهمت میشنویم اذیت میشیم بی میبینیم مشکلات گوناگونی تو جامعه سر راه ماها قرار میگیره ولی وای میشیم برای اتمام و حجت و رسندن یا نه لذا خدا به پیغمبرش که افضل و اشرف مخلوقات است، لولاک لما خلقت الافلاکه میگه خاک روبه تو سر تم ریختن بادواسی و امیر المؤمنین فرقت شکافته شد بشه واسی فاطمه زهرا سلام الله که ملکه عالم وجود اگه سیری به صورتت میخوره باید بخوره اگه بازوانت قرار برن بکنه بزا ورم بکنه اگه بچت قرار صد بشه بذار صد بشه اگه بین در و دیوار قرار قرار بگیری باید قرار بگیری اگر امام مجتبی علیه السلام باید اونچنان مظلوم واقع بشی که کنج خانه بشینی و تنهای تنها باشی بشین اگر سرت یا حسین قرار بالای بره بره و اگر و اگر و اگر که چی ای به دست امت اسلامی ندیم که اون که لازمه هدایت به ما نرسیده لذا قرآن را که 124000 پیغمبر تا پیغمبر اسلام کامل کردند تبیان لکل شی شد تا نشده بود خدا ادامه میداد برای اینکه تجلی هدایت خدا باید بیاد اما حالا که این کتاب اومد این کتاب اصول کلی رو بیان میکنه توضیح میخواد تفسیر میخواد، باید جزئیات شو برای ما توضیح بدن، اینو دویست و سال بعد از پیغمبر امامان این کار کردن، با شهادت یازده امام دوازده معصوم، یازده امام از امیر الممنین تا امام عسکری، سیزده معصوم، به علاوه حضرت زهرا صلی الله علیه ها، شهادت این سیزده تا، ما امروزه، حالا انشاءالله واردین بحث میشم، چه موضوعی، دقت کنین چه ارز چه موضوعی از موضوعات انسانی در زندگی فردی در زندگی خانوادگی در زندگی اجتماعی داریم که در قرآن با سنت دویست و پنجاه ساله یازده امام شهید و سیزده معصوم نتونیم از منبع در بیاریم نشون بدید حالا اگه نمیریم دنبالش کار درست نمیکنیم اون دیگه تقصیر ما اصلا قیبت ما زمان برای همینه لذا اصول کلی رو برای ما بیان کردن حالا بعد من عرض میکنم که رابطه فقه با عقل رابطه اجتهاد با متن دین از نظر بیان کلیات به وسیله خدا و معصومین و دخالت مجتهد به اختزای زمان و مکان درآوردن آوردن شکل درستش و شکل غلطش چیه؟ لذا تفسیر برعی باطل است اما تفسیر غیر برعی واجب است اجتهاد در مقابل نس حرام است اجتحاد در غیر مقابل نس واجب است ولی با زابطش. اینو انشالله براتون رابطه فقه و عقل عرض میکنم اما اون دومی رو که عرض کردم هرچه با خودم کلنجار رفتم دیدم نمیشه رد شد جان کلام اونجاست دومی چیه؟ خوب دقت کنید من جلسه قبل یک تلنگوری زدم فقط حالا نمونه های دیگر رو تو این تلنگور میارم دقت کنید خواهش میکنم دقت کنید به خود ابی عبدالله الحسین قسم عقیده منه پرداختن به این بحثا روشنگری این امور اولا قرآنه ثانیان عقیده است ثالثا تأثیر مستقیم در زندگی فردی و اجتماعی ما انسان ها داره و این را به عنوان یکی از عالی ترین عبادت ها حساب میکنم عبادته برای که دقیق بشیم و دریابیم حالا دقت بفرمایید. اول سوره مبارکه زخروف جلسه قبل پایان جلسه من با یه تلنگ رد شدم چی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم حامیم. ول کتاب المبین کتابی که مبینه توضیح میده روشن میکنه این کتاب مبین چیه؟ انا به درستی که ما جعلناحو قرار دادیم، جعل الهیه خب جعل الهی رو خوب دقت کنید دوستان که شبای جمعه با هم بحث داریم آشنایی ما در مقابل جعل الهی قدرت تغییر داریم؟ نه جعل تکوینی، مثلا خداوند میگه جعل لکموس سمع و والافهده لا علکم تشکروا ما برای شما گوش قرار دادیم با گوش بشنوید ما برای شما چشم قرار دادیم با چشم ببینید ما برای شما دل و عقل قرار دادیم به وسیله دل و عقل بفهمید و یاد بگیرید خب حالا کسی بگه من می‌خوام بشنوم ولی نه با گوش مگه میشه من میخوام ببینم ولی نه با چشم من میخوام بفهمم ولی نه با عقل و دل مگه با جلال الهی میتونی در این جلال الهی جعل تشریعی پربردگارم هم همینطوره حالا منطقه در جعل تشریعی به ما اختیار داده گفته انا هده اینا هستبیل هد اما ای شاکرن و اما کفورا میخوای قدم باش میخوای نباش اگه قدم نبودی آثار سوش برات خواهد بود همون جوری که اگه نخوایی با چشم ببینی نمیبینی ولی نتیجه ی ندیدن براتون خواهد من اینجا میگه انا و ما قرار دادیم هو به چی برمیگرده؟ به کتاب اون کتاب مبین را که ما برای هدایت شما قرار دادیم ما اینجوری قرار دادیم قرآنن اون کتاب مبین قرار قرآن بشه عربی و اون کتاب حالا که قرار بیاد جامعه انسانی را به سیر الالله هدایت کنه به صورت قرآن عربیه یعنی این کتابه از همین جا میفهمیم اگر بناس قرآن را دقیق بفهمیم با ترجمهش کاملا ممکن نیست چون ترجمه قدرت انتقال همه اونچرا که تو عربیه نداره ولی به هر حال مثلا مجتهدی داشته باشیم که عربی بلد نباشه با ترجمه قرآن بخواد فتوا بده بسیاری از دینشناسای اصل ما اینجوریه و لذا گرفتاری برای ما درست کرده انا جعلناه و قرآنن تعقلون یعنی شما یه سرمایه دارید عقل خدا رحمت کنه مرحوم استاد متحری یه تشبیه قشنگی داشتن میفرمودن یه کارخونه مواد اولیه مواد اولیه سالم بده به کارخونه کارخونه سالم هم کار کنه تولید عقل کارخونه شماست مواد دولیهی که خدا برای این کارخونه عقل شما در نظر گرفته قرآن عربیه یعنی این قرآن عربی که الان شما در محضرش هستید این مباد به عقل شماست لعلکن تعقلون باشی که روش تعقل کنید یاد بگیرید بفهمید ببینید خدا چی گفته لذا تدبر کنید تفکر کنید تعقل کنید تفسیر درست قرآن رو یاد بگیرید اما یه چیزی ادامه داده آیه بعدی و این نهو و به درستی که این کتاب که عربیش به شکل این قرآن اینجاست و شما با عقل میتونی روش کار بکنی که اون دسته اول میشه تبیان کلشی رو در رابطه با زندگی فردی اجتماعی خانوادگی به کمک سنت دویست و ساله یازده معصوم و سیزده شهید به دست بیاری اما این کتاب فی ام کتاب یه ام کتاب مادر کتابی هم داره لده اینا اون پیش ماست که مای ما خداییم لعلی یون حکیم خیلی بلند مرتبه است و خیلی هم محکم و حساب شده و پر از حکمت یعنی چی؟ تا قرآن داریم؟ نه پس چی میخواد بگید؟ اجازه بدید شواهد دیگه از خود قرآن اول بیارم تقاضا دارم دقت کنید در سوره مبارکه بروج شما در رابطه با قرآن کریم میرسید به این آیه شریفه که ذات اقدس الهی میفرماید بل هو قران مجید بلکه اون یک قرآن با مجد و عظمت است فی لوح محفوظ در لوح محفوظه یعنی چی اگر منظور اینه اینکه بین دفتهای اینکه بین این دو جلده میگه لدینا پیش منه لعلی حکیم خیلی بلند مرتبه است حکمت داره محکم اسباره فی لوح محفوظ در لوح محفوظ الهی قرار گرفته یعنی چی بذارید آیه دیگه باز بخونم اینو بیشتر برای ما روشن میکنه. شما در آیه شریفه و اینده هم مفاتح القیب لا یعلم ها الله و یعلم ما البر والبحر که در نماز قفیلتونم میخونید آخرش میرسید لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در اون کتاب مبین قرار گرفته خب اینجا لا رتبن ولا یابس عامه. هیچ تر خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین فرمود نه فرمود در این قران عربی که لعلکم تعقلونه پس یعنی چی اجازه بدید یه شاهد دیگه باز بیارم سوره مبارکه نمل آیه شماره 75 و ما من قائبتن فسماء ولارض هیچ پنهانی ند در عالم بالا نه در عالم پایین نیست الا فی کتاب مبین مگر اینکه در کتاب مبین همه مندرجه همه مشخص باز داشته باشید بیایم سراغ سوره یاسین آیه دوازده انا نحنو نحی الموتا و نكتب ما قدموا و آثارهم و کل الشیء نحسینا فی امام مبین اینجا کلمه کتاب تبدیل شد به امام خب وقتی ما به بیان همه اینا رو توی سوره مبارکه واقعه آیات 77 78 79 جواب میده یعنی چی من 77 و 78 رو می کنم عمدن 79 رو نگه میدارم تا توضیحات بدم بعد هفتاد و نه رو بخونم این نهول قران کریم به درستی که اون قرآن با کرامت عظیمی است که فی کتاب مکنون در اون کتاب مکنون در اون لوح محفوظ در اون لدینال علی حکیم که کتاب مبینه لا و ولا یابس الا فی کتاب مبینه این در اونجاست خب یعنی چی؟ حالا اجازه بدید توضیح رو دقت بفرمایید ما میگیم که خداوند طبق بینشی که ما در مکتب اسلام داریم بعد از این رو قبول کردیم خدا مطلق کماله این اصل رو داشته باشید بیایم حرف دوم هرچه در این عالم هست غیر ازا تقدس الهی هرچه هست میشه چی؟ ممکن الوجود واجب بالغیر ممکن الوجود واجب بلغیر مبدعش منشأش مفیزش حفظ کننده اش دهنده که واجب به علم آگاهی معرفت طبق تحلیلی که ملا صدرا کرده درجه از وجود یا عدمه درجه از وجود پس مفیز علم منشه علم مبدع علم باید ذات اقدس الهی باشه اگر تو دنیا فیزیکه عالم مطلق فیزیک خداست اگر تو دنیا پزشکیه عالم مطلق علم پزشکی خداست چون خالق دیگه جلوه ای از جلوات علم خدا در این عالمه که یکی پزشکیش رو گرفته یکی ریاضیش رو گرفته یکی فلسفه شو گرفته یکی مثلا رشته دیگه شو گرفته خب وقتی مبدع شد خدا حالا کتابی که خدا قرار میدهد، عنایت کنید کتابی که خدا قرار میدهد با به عنوان تجلیه تام هدایت الهی باید در بردارنده ازمت الهی در شعون علم باشد لازمه اون درجه از کتاب لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین باید باشه چرا؟ چون لوح محفوظه لوه محفوظ یعنی عالم علم خدا حالا خلافت الله کیست ارتبات با لوح محفوظ پیدا کند با اون نسخه قرآن که لدیناست ایناس و لذا در قرآن کریم وقتی سخن از خلقت حضرت آدم بشر با عنوان یک خلیفه الهی میکنه میگه لازمش چیه و علم آدم الاسماعه کلها یعنی همه آنچه که در لوح محفوظ است خلیفه خدا میداند من اون رو نمیفهمم. امام با او در ارتباطه لذا من با این ظاهر در ارتباطم یه مثال میزنم ما قرآن رو نشنختیم. ما امامو نشناختیم که میان میگیم دین اقلیش ما بیایم اضافه کنیم برو سراغ معلم قرآن که امام است ارتباط با لوح محفوظ داره همه نیازمندی تو را از همین قرآن در میاره بله در میاره چرا؟ چون این جلوه لوح محفوظه این یه است در اینجا که اصلش اونجاست و او در اونجا میخواد حالا یه توضیح بدم بعد آیه رو بخونم خود قرآن چجوری میگه وقت اون عبارتی که ابن سینا گفت اونم برای تو وقت اجازه بده بخونم خوب دقت کنید آقای استاد ریاضیات مثلا تو ایران اولین ریاضیدان ایرانیست توی مهمترین دانشگاه ایران تو شاخه ریاضی دانشگاه زبده دوره دکترا رو نشنده. این آقام سر کلاس داره به اینا درس میده حالا ما این استاد ازش خواهش کردیم یک جزوه ای از ریاضیاتی که شما میدونی برای دبیرستانی بده یه جزوه ای برای دبیرستانی بده یه جزوه ای برای دوره لیسانس ها بده همونی که تو سطح دکترا مطرح میکنه میده یا مرحله نازلشه مرحله نازلشه ولی با یه توضیح ها اشتباه نشه. الان توضیح میدم اشتباه نکنید. قرآن مرحله نازله لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین از لوح محفوظ به این عالم است لذا آنانی که در این عالم از ظاهر قرآن برداشت میکنند ولی به باطنش نمیتونن راه پیدا کنن ولی آنانی که در این عالم ارتباط به اون عالم پیدا کردن میتونن به باطن قرآن راه پیدا کنن لذا حقایقی را از باطن قرآن در میآورد که بقیه میگن چجوری شد میگه بله باید اونجا رو تو مو میبینی و من مو حالا آیه چی گفت ابن سینا چجوری توضیح داد آیه رو دقت بفرمایید در سوره مبارکه واقعه. انه القران کریم. این قران با کرامت فی کتاب مکنون اصلش در اون عالم کینونت الهی است لا یمسه الا المطهرون مس یعنی به عمقش راه پیدا کردن به عمقش دسترسی پیدا نمی مگر اونهایی که متحرن متحر در قرآن کیا معرفی کرده انما یرید بس الله لیوزحب عنكم الرشس اهل البیت و یو تطهیرا لذا وقتی فرمود فی كتاب مبین تو سوره یاسین آیه 12 فرمود احسینا هفی امام مبین امام میشه قرآن ناطق ولی قرآن ناطقی که تو لوه محفوظه نه نسخه نازلش که من میتونم از او بفهمم عبارت همینه ولی نهوه برداشت در ارتباط با لوح محفوظه لذا حالا روایات در این زمینه ببینید چه خبره چرا پیغمبر اسلام فرمود من اخلص لله اربعین سباها جرت ینابی الحکمه من قلبه الاله قلب میشه معدن حکمت چرا حالا بذارید از ابن سینای مطلبی براتون بخونم عجب زیباست مرتبه عقل انبیا درجه کمال حالتی است که همه قبا و استعدادهای بشری دران به کمال رسیده باشد و این سه شرط اساسی را باید پیانبر داشته باشد. صفای عقل، کمال تخیل، قدرت تأثیر بر ماده خارجی به گونه ای که را به اطاعت آورد، در صورت وجود چنین شرایطی، انگاه پیامبر به درجه آگاهی نبوت می رسد و دارای عقل قدسی می شود که هر معرفتی را ناگهان و واسطه و بدون تعلیم یافتن قبلی بشری از عقل فعال دریافت می کند بحث میق فلسفی است. من با یه توضیح مختصر است عرض کردم اولش هی hey, کلجار رفتم این دومی رو بگم یا نه. هم اولیش هم کافی ها اولیش هم جوابه ولی این یه بحث دیگری. این اون نیست که وقتی امام زمان ظهور کرد میفهمیم قرآن یعنی چی. میفهمیم احکام الهی یعنی چی. میفهمیم این اینکه فرمودن علم 27 تاست دو تاش تا قبل از ظهور حضرت اومده 25 تاشو حضرت میارن اون وقت میفهمیم یعنی چی این همونی است که امام زمان علیه السلام تشپیارن تو تمام روایات ما داره تا قبل از امام عصر هر پیغمبر و امامی معمور به ظاهر بودند ولی امام مأمور به باطن میشود میگه این این باطنه و از باطن توضیح میده که اون بحثه حالا اینو من اجازه بدید یه توضیح خیلی ساده عرض کنم الان شما عزیزان تو حسینی ارشاد آقای اون خانما نشستید. بنده این کاغذ الان رو به شما بگیرم. چیزی منکس میشه درش؟ نه. حالا اگر این آینه باشه. من این آینه رو گرفتم. حالا فرض کنید این آینم به یه گونهی ساخته شده که من اینجا بگیرم تمام این صحنه حسینی ارشاد میخده داخل این آینه. و اگر کسی شما رو اصلا نبینه فقط از اون بالا نگاه تو آینه بکنه همه اون که اینجاست میبینه. دل آینه است دل پیامبر و امام آینه است که آینه معصوم تاهره رو به عالم لوح محفوظه رو به عالم لدیناست رو به عالم لارتمن لایابسه لذا به اندازه نورانیت دل اولیای الهی بعضیاشو قرآن میگه چی و اندهو علمون منل کتاب کیا بودن؟ آصف ابن برخیا یه رو میدونید دیگه تکرار نکنم اما راجبه اونایی که بعد از قرآن به عنوان معصوم قراره در کنار قرآن قرار بگیرن چی فرمود؟ و یقول لذین کفرو لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکن و من اندهو دل مول کتاب یعنی این دل آینه است. و چنانم به اون سمت گرفته شده حالا اونو به تعبیر ابن سینا عقل فعال این عقل مستفاطی که میخواد از عقل فعال طرف فایده بکند چنان افاظه میکنه میگه این آیه این معنی رم میده این آیه ای معنی میده. این آیه ای معنی رم میده رضا امام جواد 17 ساله خیر مردای ریش سفید کذایی دربار متوکل اومدن گفتن که آقا دوزو گرفتیم قرآن میگه از سارغ و از سارغه فخت او ایدی هما البته با اون شرایط و آدابی که در فقر معین شده باید دست رو قطع کنیم از کجا؟ یکی گو از مچ، یکی گو از آرنج، یکی گو از قطع خلیفه گو خب بلاخره این که نمیشه باید یه جا معلوم باشه گو برید امام جواد بیارید 17 سالشون. امام جواد علیه السلام را آوردند الله اعلم و عیص آقا از کجا باید قطع کنیم فرمود قرآن گفته از انگشتا قرآن گفته از انگشتا هیچ جای قرآن نداره شما قرآن بلد نیستید حالا به تعبیر من شما قرآن بلد نیستید گفت چطور گفت مگه قرآن نگفته انل المساج دل الله جای سجده مخصوص خداست و یکی از جای تجره کفه دست هست یا نه؟ گفتن بله. وقتی فرموده فخته و عیدیه ما اون مقدار از دست که اختصاصی خدا بمونه بقیهش چیه؟ انگوشت هست. پس این می... اراس میگه. ایراس میگه. ایراس میگه. ایراس میگه. ولی کی میتونه داره؟ اینانه یه نمونه ظاهریش ورز میکنم باز. لذا کتاب خدا باید کامل باشه. ولی یه خدا هم در کنار به همین جهت ما غ کتاب منعای امام قدرت هدایت خلق ندارد. امام را بگیریم، کتاب رها کنیم، هدایت نمیشیم. کتاب و امام باید با هم باشه. لذا پیغمبر کرارن چی فرمودن؟ انی تار کنفیکم و سغلین او سغلین کتاب الله و اطرتی ما انتمستکتم به ما لن تزل بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز. تکمیل این بحث رو می الله انشاءالله هفته آینده اما چه کردن این امت به جای اینکه که معلم کتاب رو قدر بدانن جانم به فدایت یا ابا عبدالله این روزا سر بریده یابی عبدالله تو مجلس یزید دیگه میخواد پیامش رو با سر بریدم برسونه یک سفیر روم مسیحی مسلمون نیست یزیدم سرمست از غرور که حالا ما پیروز شدیم سفرها رو دعوت کرده بیان تو کاخ ببینیم سفرها اومدن این سفیر روم که مسیحیه اونم اومدن نشسته دید سر بریدهی تو تشته یه اده زن و بچه تو مجلس یزید نگه داشتن و یزیدم جام شراب دستش تازیانم به دستش به لب و دندان میذره یه وقت خیره شد به سر دید ای این داره آیه قرآن میخونه اندال حسینه مثب الهدا و وصفی نتون بخواد هدایت کنه اونی که لایقه هدایت بشه خیره خیره نگاه کرد. این سر چیه؟ گفتن سر حسین پسر فاطمه و علیه فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر ما اه ما کسانی که سی نصف با پیغمبر منفاصله دارن خاک کف پاشون بر میداریم. شما یه نسل نگزشته شما اینو اینجوری میکنید گفت زود اینو بکشید آبروی ما رو میبره تا گفت اینو گردم بزنید شهادت جاری که گفتن چی شد خب من دیشب تالامونقلبم دیشب پیغمبر اسلام رو خواب دیدم به من گفت فردا شب تو بهشت مهمان منی بهشت برزخی من از خواب پا شدم متحیرم آخه من که مسیحیم اگه قرار امروز بمیرم باید برم پیش حضرت ایسا، پیغمبر اسلام با من چیکار داره ولی حالا فهمیدم حسینشو فرستاده که منو دعوت کنه منو هدایت کنه لذا شهادتین گفت و در کنار سر بریده ابی عبدالله جلوه هدایت الهی هدایتش کرد و به اون که قرار بود برسه رسید صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و إلى الله الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیحن الله اشفع لنا اندالله اللهم بسمک العظیم الاعزم الاعزل اجل الاکرم به صاحب الزمان یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله يا رحمان یا رحيم یا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكف يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات انك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم ارواح حاميين الفضل على البريه يا باصطال يدين بلاتين يا صاحب المبان على محمد و ال خير البر لنا یا ز لولام و فی عزا من لا نجات من کم یا سید الکریم نجناب و خلصناب به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیبون و مزتر رزا دام و یک شفاسون هم من یا جیبال ماز تر ریزا داما و ینگ شفا سمون هم یا جیبال ماز تر و ینگ شفا یا مجیب دوت المزترین به که نامزترون فجم نامون یا خیاس المزترل مستقیسین بکن لامو سلامی سوند، اگر سلامو اگر سلامو اگر و بق محمد، يا به حق علی. یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به آن الحسن یا قدیم الاحسان به دل حسین و تسعت ساعت ما اسمین من زورگ یاتل اللهم عجل لولیک الان فرج اللهم عجل لولیک الان فرج بشریت را از خواب غفلت و بدفهمی دین بدفهمی ف... وای نجات نایت بفرما ما را قدردان نعمت هدایتت قرار بده ما را فحیم به نعمت هدایتت قرار بده ما را عامله به دستورات دینیت قرار بده شیعان دنیا و این مملکت دشمن شاد مفرما ظالمین عالم رو نابود بگردان جوونهای ما در پناه خودت محافظت بفرما نوامیس ما مقدسات ما باورهای ما در فتن آخر الزمان زمان خودت محافظت بفرما به نبی و آلح